قسطه های هزار یک شب شب پنجاه و دوم. ملکه با قزبان گفت ای قزبان وای بر تو کار من به اینجا رسیده که تو با من چنین سخنگویی و از من تمنای وسال کنی؟ پس ملکه گریان شد و گفت ای زاده زنا و ای پرورده کنار روسپیان. بیان تو را گمان این است که همه مردم به رتبت یکی هستند؟ چون غلامک دل سیاه این سخنان بشنید در خشم شد و ملکه را با تیغ ستم بکشت و خرجین و زر و گوهر برداشته بگریخت و ملکه ابریزه کشته بر خاک بیفتاد مرجانه پسری را که ملکه زاده بود به کنار گرفته بر ملکه همی گریست که ناگاه گردی جهان را فرو گرفت چون گرد بنشست سپاه بیکران از رومیان پدید آمدند و ایشان سپاه ملک هردوب پدر ملک ابریزه بودند و سبب آمدن ایشان این بود که چون ملک هردوب شنید که دخترش با کنیزکان به بقداد رفته و در پیش ملک نعمان هستند سپاهی برداشته بیرون آمد چون به دینجا رسید ملک ابریزه را دید که بر خاک و خون قلتیده و مرجانه کنیز او گریان نشسته. ملک هردوب خود را از اسب بیانداخت و بی خود گشت. سواران نیز پیاده شدند و آواز به گریه و خروش بلند شد. چون ملک به خیش آمد از مرجانه حدیث باز پرسید. مرجانه قصه بر او فرو خواند ملک هردوب از شنیدن حکایت گریان شد و جهان در چشمش تاریک گردید پس فرمان داد ملکه را به تابوت گذاشتند و به قصاریه بازگشتند و تابوت را به را آوردند ملک به نزد مادرش ذات و دواهی رفت و از حادثه آگاهش کرد که نخست ملک نعمان به هیلت به کارت دختر من برداشته پس از آن سیاه او را کشته است به حق مسیح سوگند که ناچار انتقام از ایشان بکشم و ننگ از خیشتن بردارم وگرنه خود را حلاک سازم پس بگریست و بخروشید آنگاه ذات و گفت ای فرزند دختر تو را جز مرجانه دیگری نکشته که مرجانه او را ناخوش می داشت پس از آن ذات و با پسرش گفت محزون و غمین مباش که به حق مسیح سوگند که من از ملک نعمان بر نگردم تا او را و پسران او را بکشم و به او کاری کنم که در همه شهرها مذکور شود ولیکن تو را باید که فرمان من بپذیری و آنچه گویم به جای آوری ملک هردوب با مادرش گفت به حق مسیح سوگند که سر موی مخالفت نکنم زاد و دباهی گفت چند دختر بکر حاضر کن و دانشمندان نیز بیاور و بسیم مال به دانشمندان ده که دختران را حکمت و ادب و شعار و منادمت ملوک بیاموزند ولی دانشمندان از مسلمانان باشند که اخبار عرب و تواریخ خلفا و احوالات ملوک اسلام بیاموزند چون دختران همه چیز یادگیرند آنگاه به دشمن چیره شویم و انتقام از وی بگیریم از آنکه ملک نعمان به محبت دختران مفتون است او خود 366 و و کنیز داشت و 100 کنیز ماهروی از کنیزان ملک ابریزه در نزد او هستند چون این دختران دانش یادگیرند من ایشان را برداشته به بقداد سفر کنم چون ملک هردوب از ذات و دباهی این را بشنید خورسند شد در حال رسولان به هر سو فرستاد و دانشمندان از شهرهای دور حاضر آورد و جیره و جامعه به دیشان ترتیب داد و مال بیکران وعده کرد و دختران را نیز حاضر گردانید چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لبز داستان فروب است